قصاب بوشی بله خانم سلام علیکم حالتون احوالتون چاق دماغ مماقتون تخت یقین خیالتون چطور بارتون؟ الحمدلله رو برام حالم خوب بروی پام آقا چطوره حالشو؟ کوکه ایشالله کیفشون سر شده سردردشون روزا میرم روزام میرم بله میره اداره مشغول کاروباره هر کی به کاری مشغول باید که در بیاد پول بعد از تموم هر با چی میخوای میخوایی بفرما. یک کیلو گوشت راسته به من بده درسته چربی نذار نمیخوام سوتر به جام و چام آبچی تونم برخشی. باس این که دیر رسیدی گوشتای خوب تمام شد هرچی که بود هروم شد پس من چیه آخر بون به میخ شده آویزون اون که میبینی گاره گوشتش خیلی خرابه لاغر و زرد و زاره انقدره گوش نداره گمون کنم اون وقتا گرفته آن بولانزا چه صحبتا چه حرفا قلم میخواد بفرد جنبه میخوایی مال الله اون چیه پشت شیشه؟ اون بوده با اون میشه از اون بده؟ نمیشه از این یکی؟ نمیشه مال دو هفته پیشه رونش مال عقص مال باقیش مال دعیشه تکلیف ما چی میشه؟ من که میام همیشه همش میگی نمیشه آت تو هم چه قلبت ناز که اینش شیشه؟ آخه تو هم که کارت همشقه را قمیشه لا دست جنبو زونه خودم نمیشه نمیشه نمیشه گوشتای خوب و هر روز میدی به قوم و خیشات به دوستات و رفیقات به این لش به اون لش ماها داریم نخواستم گوشت گوستن ساله کیلویی چند گوستاله که؟ همون جا؟ اون که ماله تموشا ساله باشه اون هم واسه زنم گذشتم کلو و پاچه هاشم واسه خودم گوشتم شیکنبو و بو واسه نرم گذاشتم بس که بفرما با کندرارویالا گوش اگه خواستی فردا فردا بازم میارنم تو یخچالا میذارم امروز دیگه تمومه عروسی عمومه میخوام برم عروسی خنده و دیده بوسی ها جینابا جی